بخش چهارم آتش پدیده های سوزاننده ویران کننده و نابود کننده زندگی سلیمان مست، اونیه شبوال 643 بین خودمان بماند، این زهرماری را که میخورم خیلی وقتها از خود بیخود خود نمیفهمم دور نمی برم چه میگذرد حتی بعضی وقتها بختک می بینم و نعره میزنم اما این که ببینی حضرت مولانا از در میخانه بیاید تو، از آن خیالات عجیب و غریب است که حتی با یک خمر زهرماری هم سراغ آدم نمی آید. دهانم باز ماند، بازویم را نیشگون گرفتم، ببینم خوابم یا بیدار. چشمهایم را مالیدم، باز هم قیب نشد. مردی که دم در ایستاده بود داد زدم اوهوی خریستوس این چی بود بخوردم دادی انگار بد جوری کل پام کرده کاش آن پیاله آخری را نمی خوردم نمی چم شده حدس بزن این آدمی که دم در ایستاده به چشمم شبیه کی می آید ها بگو دیگر فکر کردم مولاناست. نگاه کن نگاه کن جان من شبیه مولانا نیست این یارو یکی از پشت سرم داد زد هیس ساکت شو احمق برگشتم ببینم کدام نامردی است که اینطور سرم داد میزند. اما خوب است چی دیده باشم دیدم جماعت داخل میخانه ساکت و سامت با دهان باز زل زده اند به در. حتی خریستوس هم، حتی ساقی. سگی که مشتری پراپاقرس میخانه بود هم انگار فهمیده بود اتفاقی غیر عادی افتاده. گوشهای آویزانش را روی زمین ولو کرده بود و با تعجب نگاه میکرد. تاجر فرش ایرانی که به خیال خودش داشت آواز میخواند صدای انکرال اسواتش را بریده بود و خبردار ایستاده بود او هم مثل همه مست هایی که سعی می کنند خودشان را هوشیار جلوه بدهند حتی با جدیتی اقرقامیز ابروهایش را درهم کشیده و چانهاش را بالا گرفته بود مرده بینوا سعی می کرد صاف بیستد، اما همانطور سر جایش به این طرف و آن طرف خم میشد. سکوت را خریستوس شکست، همانطور که از کلمههایش هایش شلاپ و عدب و نزاکت چکه می کرد و تا زمین خم شده بود گفت حضرت مولانا، به میخانهام خوش آمده اید، صفا آورده اید. شما را در اینجا دیدن باعث افتخار ماست امر بفرمایید چه کمکی از دستمان برمیآید در خدمتگذاری حاضری چشمهایم را جمع کردم و به طرف در نگاه کردم و نگاه کردم. دیدم نه خودش است مردی که آنجا ایستاده واقعا خود مولاناست. مولانا به سختی گفت، سایه تان کم نشود، صرفه مختصری کرد، رنگ رخش سرخ شد، سفید شد، بعد ادامه داد، گفتم کمی شراب بخرم، برای همین آمدم. خریستوس بینوا تا این حرف را شنید، دهانش از حیرت مثل گاله بازما. فقط او که نبود، همه من از حیرت خشکمان زده بود. لابد توی کله همه یک فکر می شرخید. حالا که مشهورترین عالم دینی قونیه به میخانه آمده و از ما شراب می خواهد پس روز قیامت نزدیک است. بالاخره به حرف آمدم. بابا، به فرما بزنید به مرد بیچاره. همانطور سر پا مانده، ای بست آخر. آن موقع بود که خریستوس به خودش آمد و دنبال جایی گشت که برای نشستن مولانا مناسب باشد. آخر سر هم میز کناری من را انتخاب کرد. مولانا پیش از نشستن در جایی که نشانش داده بودند، محترمانه به همه سلام کرد. همه ما مست با احترام خم شدیم و جواب سلامش را دادیم. زاهدی مثل مولانا با آن حالت آرام و از خود مطمئنش، سروری و بزرگیش و جبه ظریف و قیمتیش اصلاً به چنین مکانی نمی آمد. طاقت نیاوردم، رفتم پیشش نشستم، آهسته پرسیدم، اگر اجازه بدهید و حمل بر بی ادبی نفرمایید می‌خواستم چیزی بپرسم مولانا گفت خواهش می‌کنم بپرسید گفتم جسارت است اما شخصیت عالی مقامی مثل شما اینجا چه کار دارد مولانا لبخند زنان گفت نپرس فکر کنم دارم امتحان عاشق‌ها را پس میدهم. شمس تبریزی مرا به اینجا فرستاده تا شعن و اعتبارم را با خاک یکسان کند. منمن من کنان پرسیدم یعنی چه مگر خوب است که آدم شعن و اعتبارش را از دست بدهد؟ مولانا خندید. گفت. مانده به اینکه از کدام منظر نگاه کنی باید هر چیزی جز عشق به خدا را بروبیم و دور بیندازیم و از مرض خود را متفاوت و مهم شمردن خلاص شویم اگر وابستگیمان به خانواده مقام پول و ثروت حتی مسجد یا مدرسه محلی من، به مرض منیت دشارمان می کندند که میکند باید این وابستگی را از میان برداریم. با آنکه از حرفهایش خیلی سردر در نمی هر توضیحی که میداد به نظر کله منگم خیلی معقول میآمد. راستش من از اول هم فکر میکردم این سوفیی به فلسفه‌های عجیب و غریب علاقمندم و همگیشان کمی تا قسمتی دیوانه اند. حالا می‌دیدم حق با من بوده نوبت مولانا بود که بپرسد او هم مثل من صدایش را پایین آورد و آهسته گفت اگر اجازه بدهید و حمل بر بیادبی نفرمایید من هم میخواستم چیزی بپرسم. ماجرای زخم روی صورتتان چیست؟ چطور زخم شده؟ گفتم: ماجرای خاصی ندارد یک شب که داشتم به خانه برمیگشتم به دوتا گزمه برخوردم یکیشان شلاق داشت و تا می توانست کتکم زد اسمش را تا آخر عمرم فراموش نمی کنم. بی برس. مولانا پرسید. اما برای چه؟ درست همان لحظه خریستوس دو کوزه شراب گذاشت جلو مولانا. من هم با بدجنسی به کوزه ها اشاره کردم و گفتم چون از اینها خورده بودم. مولانا با حالتی متفکر نگاهش را دزدید اما معطلی دوستانه لبخندی زد و گفت انشاالله چه زودتر خوب بشود اینطوری گرم صحبت شدیم پنیر بز و قارچ تنوری را قاطق نان من نانمان کردیم از هر دری حرف زدیم از بچگیمان از عشق از ایمان، از دوستی و از زیباییها که گمان می کردم خیلی وقت است فراموششان کردم. اما در آن لحظه از یادآوریشان لذتی بینهایت بردم. همین که آفتاب غروب کرد، مولوی برخاست. هر کس در میخانه بود، همراه با او از جا بلند شد. همه مثل سربازهایی هایی که ما فوقشان را دیده باشند، صف کشیدیم و خبردار ایستادیم. چه منظری بود. مهمانمان داشت از در بیرون می رفت که یک دفعه گفتم حضرت مولانا، پیش از رفتن خواهش می کنم به ما بگو چرا شراب حرام است. خریستوس در هم کشید و به طرفم دوید. فکر کنم ترسیده بود با اینجور جور سوالهای غلط انداز حوصله مشتری ارجمندش را سر ببرم گفت ساکت باش سلیمان اینجور جور را برای چی میپرسی به چه کارت می آید گفتم خب مگر چیست می خواهم بدانم چه جوابی میدهد. دوباره به طرف مولانا برگشتم گفتم سرورم ما را دیدید آدم های ترسناکی نیستیم مگر نه درست است عیب و ایرادهایی داریم اما لایق این همه بد و بیراه هم نیستیم این تور نیست اگر حدمان را بدانیم و به کسی آزار نرسانی آن وقت شراب چرا حرام باشد مشتریهای دیگر هم که حرفهایم را شنیده بودند به ما نزدیک شدند و در اطرافمان حلقه کنجکاوان تشکیل شد مولانا چه جوابی می‌خواست بدهد سکوتی سنگین همه جا را فرا گرفت سرانجام خطیب مشهور چنین گفت هر چیز که آن خوش است نهی است مدام تا می نشود دلیل این مردم آن ورنه می و چنگ و صورت خوب و سما برخاص حلال گشت و بر عام حرام لابد همگی احساس کرده بودیم لازم است به حکمت این کلمه ها فکر کنیم که صدا از کسی در نیامد بعد مولانا ادامه داد. دوستان من: شراب نوشیدنی سالم نیست. چون بدترین جنبه های وجودمان را آشکار می کند. من معتقدم که باید از شراب اجتناب کرد. با این همه نباید فراموش کنیم که می و میخانه مسئول اعمال ما نیستند. باید گستاخی ریاکاری جینورزی و خشونت را پیش از شراب از نفس خود برانی و سرانجام هر که بخواهد می نوشد و هر که نخواهد نمی نوشد کسی حق ندارد دیگری را مجبور کند چون در دین اجبار نیست بعضی از مشتریها سر سرتکان دادند من اما پیاله ام را برای استاد بلند کردم و گفتم حسرت مولانا تو عالمی خوشقلب، قدرشناس و کم نظیری چون امروز به اینجا آمدی ممکن است کسانی پیدا شوند و حرفهای نامربوط پشت سرت بزنند اما به نظر من اینکه فقیه ارزشمندی مثل تو ما را از خود دانسته و تا اینجا آمده و بیان که اسیر پیش داوری شود با ما هم صحبت شده کار خیلی جسورانه است. متشکرم. مولانا نگاهی محبتآمیز به من انداخت بعد کوزه های شراب را که از موقع آمدن دست بهشان نزده بود برداشت و در تاریکی رو به باد سردی که شروع به وزیدن کرده بود به راه افتاد و رفت